فجر. بسم الله الرحمن الرحیم بنامه الله که بخشای اندفاع با رحمت است. قسم به سپید دم و, عشر. و قسم به شبهای دهگانه و, و قسم به زوج و فرق. و اللیل اذا و قسم به شب هنگامی که میرود هل فی ذالک قسم لذی آیا در این قسم ها قسم مهمی برای خیردمندان نیست علمت و کیف فعل ربک بعاد آیا ندیده ای که پروردگارد با قوم آد چکر ای رمضات العماد با قخ های ارم ها ستونهادا التي يوف که همانندش در شهرهای دیگر نبود وسمود الذي جب مصف را ب و قوم سمود که سنگ های عظیم در آن وادی می بریدند و فرعون را و فرونی که، قدرتمند بود و شکن جگر ال الذين طغوا في البلاد الفساد جماعتی که در آن سرزمین پا فراتر از حق گذاشتند به همباره در آن فساد و تباهی به راه میانداختند فصاد و علیهم ربک سوط عذاب سرانجام پروردگار تو تازیانه عذاب را بر سرشان فرود آورد این که پروردگار تو هم در کمین است فَأَمَّلْ اِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْعَمَهُ فَيَكُولُ فا رب بی اما این انسان هرگاه پروردگارش برای امتان او را اکرام کند و نعمتش بخشد مغرورانه میگوید نمیگوید پروردگارم مرا گرامی داشته است و اما اذا مبتلاه فقدر عليه و اما هنگامی که برای امتحان رزق را بر او تنگ گیرد میگوید پروردگارم مرا خار کرده است بل <تصفيق> لا این چنین نیست که میپنداری بلکه شما یتیمان را مورد توجه قرار نمیدهی <تصفيق> و یک را بر اطعام مساکین ترغیب نمیکنی. کنی و تکنونت تراث اکلا لما و میراس را جم کرده هریسانه می خوری و تحبون المال حبا جمعا و مال و سربت را آشغان دوست داری کلا ایداد و این چون این نیست که پنداش دید هنگامی که زمین به شدید ترین وچی کوبیده شود و جاء ربک و صفا صفا و فرار سد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند. و جیعه یوم ایذیم بی یوم ایذی الانسان و له ذکره و جهنم را دران روز مهیا سازند آن هنگام انسان پند می گیرد اما پند دران زمان او را چه سو؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. انسان گوید کاش برای این زندگی چیزی را پیشاپیش پیش می فرست لا یعذب عذابه احد بدانید که در آن روز هیچ کس چون او عذاب نمی کنند. ولا و لا احد. به هیچ کس مانند او به بند نمیکشد پس تو ای جان به آرامش رسیده الى ربك به سوی پروردگارت بازگرد که هم تو از او راضی هستی و هم او از تو خوشنون دخولی فی عبادی و دخولی جنتی در زمره بندگان خاص من داخل شو و به بهشت من درآی. راست گفت خداوند بلند مرتبه و این. کاری از مؤسسه قیامبر مهر و رحمت سلالله الله علیه و علیه و سلم.